شام این داستان سه همسر با عرض سلام و ارادت خدمت شما عزیزان همراه با یکی دیگر از داستان های مردم مقالستان در خدمت شما هستد به نام خدا سالها پیش حاکمی زندگی میکرد که سه همسر داشت کوچکترین همسر و حاکم زنی خوب و مهربان اما دو همسر بزرگتر با بدجنسی نسبت به زن سوم حسادت میکردند اونها اون رو آزار میدادند و در چشم حاکم خارش میکردند روزی حاکم مجبور شد سفری طولانی بره اما قبل از رفتن به سفر همسرانش رو صدا کرد و دور خودش نشوند از اونها خواست تا موقعی که برسفر بر بیگرده هر کدومشون هدیه خوبی براش آماده کنن. همسر اول گفت بله روی چشم من براتون یک چکمه عالی از بهترین چرم می سازم. دومین همسر گفت فداتون بشم من از بهترین پارچه ها لباسی زیبا و برازنده شما خواهم دوخت و جوانترین همسر حاکم گفت همسر عزیزم من بهترین پسر رو براتون به دنیا خواهم آورد پسری که ستون فقراتش از نقره و قفسه سینش از طلا باشه حاکم خوشحال و راضی از این وعده ها به سفر رفت از ورای اون روز همسران حاکم دست به کار شدن تا به قول خودشون عمل کنن همسر اول و دوم پس از مدتی هدایای خودشون رو آماده کردند اونها از این فکر که همسر جوانتر نمیتونه به قول خودش عمل کنه بسیار خوشحال بودن اما این خوشحالی زیاد طولی نکشید و در برابر تعجب و حیرت همه همسر جوان حاکم پسر عجیبی به دنیا آورد که همه رو مات و مبهوت کرد چون این پسر ستون فقراتش از نقره و قفصه سینش از تلا بود همسران بزرگتر حاکم وقتی کودک رو دیدن آتیش حسادتشون شولور شد و به فکر فرو رفتند، اونها می که این پسر برای حاکم عزیز و گرامی خواهد شد و حتی نگاهی هم به هدایای اونها نخواهد انداخت. این بود که تصمیم گرفتند اون رو از بین ببرند و سربنیس کنند. روزی همسر اول حاکم سراغ همسر جوانتر رفت و با حرف و گفتگو سر اون رو گرم کرد همسر دوم کودک رو دزدید در پارچه کثیفی پیچید و به باغ برد و جلوی سگ گرستنی انداخت سگ بچه رو نخورد اون رو بو کرد و از اونجا دور شد زن جنس عصبانوی ناراحت شد بچه رو برداشت و لای مقداری یونجه گذاشت و جلوی گاو بزرگی انداخت گاو که از بوی یونجه مست شده بود یونجه و کودک رو یک جا بل اید. تا سر فرصت اون رو نشخار کنه. مادر کودک وقتی فهمید فرزندش گم شده خیلی غمگین شد. اما کاری از دستش بر نمی آمد. اون تموم کاخ رو گشت و از همه خدمتکاران سراغ کودک خودش رو گرفت اما هیچ کس به اون کمکی نکرد. حاکم وقتی که از سفر برگشت زنهای اول و دوم هدایی خودشون رو که قول داده بودن و حاکم پیشکش کردند. نوبت به زن جوان رسید. اون دستخالی بود و زبانش بند اومده بود حاکم از اون خشمی شد و دستور داد اون رو به دومه گاوی ببندند و از قصر بیرون کنند این تنبیه زنهای حاکم رو خوشحال کرد زیرا فکر میکردن که برای همیشه از شر اون زن جوان راحت شدن او و گاو چند روزی رو در اطراف شهر سرگردان بودند. یه روز آفتابی و درخشان که نسیم خونکی هم از توی کوهستان میوزید همسر جوان دید که گاو در حال زایمانه اون با تعجب مشاهده کرد که گاو به جای یک گوساله یک نوزاد آدم به دنیا آورد هنگامی که دقت کرد بچه خودش رو شناخت و از اینکه اون دوباره کودکش رو به دست ارده بود خیلی خوشحال شد خدا رو شکر کرد اما تصمیم گرفت که دیگه به نزد حاکم بر نگرده چون از زندگی در جایی که پر از ظلم و ستم بود خسته شده بود اونها زندگی جدید رو شروع کردند زن کودکش رو به دوش میکشید و ساز میزد و در محله ها میگشت. روزی همسر اول و دوم حاکم درباره کودک عجیب یک نوازنده دوره گرد که ستون فقراتش نقره‌ای و سینش طلای بود چیزهای شنیدن. ترس سراسر وجودشون رو فرا گرفت مبادا جنایتی را که انجام داده بودم بر ملا بشه و این فکر شیطانی به مغزشون رسید که باید کودک رو از بین ببریم. اونها نقشه ای کشیدند. همسر اول وانمود کرد که مریض شده و یه بیماری سخت بدون درمان گرفته. حاکم همه ی پزشکان سرزمین خودش رو فراخوند. هر کس می آمد و دارویی میداد و میرفت اما زن دارو رو نمیخورد و آهناله می ناله میکرد. روزی حاکم قمگین و افسرده بالای سر همسرش نشسته بود که زن به اون گفت: شما خیلی تلاش کردید من خوبشم اما داروی من چیز دیگه ایه. حاکم گفت داروی تو چیه؟ بگو تو از زیر سنگم که شده برات اون رو تهیه کنم زن بازیدکی گفت اگر قلب فسری رو که سینش تلایی و ستون فقراتش نغره بخورم فوری خوب میشم حاکم به افرادش دستور داد که همه جا رو جستجو کنند و تا هنگامی که اون کودک رو پیدا نکردند و قلبش رو در نیاورده باشن به قصر بر نگردن ماموران حاکم سراسر مملکت رو جستجو کردند و هر پسر بدچهی رو که میدیدند، لباسش رو کنار می تا دنده و ستون فقراتش رو نگاه کنن سرانجام اون رو پیدا کردند، اما درست در لحظهی که می خواستن اون رو بگیرند آسمان غرید و رعد و برقی دور پسر رو حصار کشید ماموران وحشت زده از اون دور شدند و قبل از اینکه برق آسمان اونها رو خاکسترشون کنه. از اونجا که نمیتونستند دست خالی به غص برگردن تصمیم گرفتن قلب سگ مردهی رو بیرون بیارن و با خودشون ببرن. همسر بیمار حاکم بیخبر از همه جا قلب سگ رو خورد و بس بستر بیماری برخواست. اون کاملا خوب شده بود. روزها و ماها و سالها گذشت کودک حالا دیگه جوون رعنایی شده بود سرانجام روزی مادرش با اون درباره ظلم و ستمی که در حق اونها روا شده بود صحبت کرد جوون ناراحت شد اون مثل مادر نبود که ماننده یک کوه سبر و تحمل داشته باشه اون تصمیم گرفت به نزد حاکم بره و چراغ حقیقت رو روشن کنه روزی لباس آوازخوان گردی رو بهتن کرد و به قصر حاکم رفت. هنگامی که به حضور حاکم رسید گفت سر بر من اجازه بدید شما رو با داستان جذابی سرگرم کنم. حاکم که اون رو حال و آماده قصد شنیدن بود به اون اجازه داد. و جوان داستان زندگی خودش رو از ابتدا تا انتها نقض کرد. سالها پیش حاکمی زندگی میکرد که سه همسر داشت. کوچکترین همسر حاکم زنی خوب و مهربان بود اما دو همسر بزرگتر حاکم پتجنس و بیرحم. هنگامی که داستان به پایان رسید پیراهنش رو در آورد و سینهی تلایی و ستون فقرات و نقرهی خودش رو نشون داد غم سنگینی سراسر وجود حاکم رو بر گرفت و باورش نمیشد که این ظلم بزرگ رو اون روا داشته از خشم لرزید و فرمون داد همسر اول دومش رو از قصر بیرون کردند و سپس همسر جوان و مظلوم خودش رو به قصر برگردوند و از اون عذرخواهی و طلب بخشش کرد از اون پس حاکم در کنار همسر با و جانشین برومندش که سینه ای از طلا و ستون فقراتی از نقره داشت سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کردن بله دوستان من یادمون باشه که مهربانی همیشه بر بدی و پلیدی پیروزه سفاس که تا انتهای این داستان با من همراه بودید مراقب خوبیهای خودتون باشید تا داستان بعد شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم خدا یه رو نگه دار شما